हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हेरा है हैदर हैदर हैदर है मजलूम पौते Heydar Heydar khater Kheibar Heydar Heydar Heydar avval o aakhir Heydar Heydar Heydar khater doosar Heydar Heydar Heydar hey mazlum khate Heydar Heydar khater Kheibar Heydar Heydar خوسته دیدار بس افتادی در زهرا بابا خوسته دیدار بس در زهرا بابا دشت از عشق شک شد دریا بابا نیبینم خوسته تو صدا ده لو زهرا داری ملت قوم رو گورگون داستان لرزونت بابا پر خون زار به پریشونت بادا اش خاطم پار خون مگه زینب مرده گورگون چشمای گریم زده بابا اش خاطم پار خون مگه زینب مرده گورگون چشمای گریم زده بابا یا علی یا علی یا علی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 بند زرد شده هم رنگه رو راد بینون پوشش یا گوشه یاب رو اما اینگار رسته دلتون جا چو شب بود تنواری و غربت و تابو میرزه برون اسماء ای باش رو جسم بیه جون زهرای ایوانی من شب تاریک تاریک تاریک ای در منده تلوی تلوی منی ریز آرام بره من آسمان ایوان روی جسم بیه جون زهرای ایوانی من شب تاریک تاریک تاریک ای در منده تلوی تلوی عمری این نه وقت دلن تبونه باختی فرزند دید که ابر کبوده می سوختی و می گشتی عمر جنونم دهر جان خیر برکت تو بود بابا چون شاد میشیم مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه ما درد همشد میشه مرهم زخم سر تو اشبیر سرخه چشموی گریون رو درد هی در هی در هیلر هیلر هیلر هیلر هیدار هیلر هیلر هیلر هی در هی در هیلر میدار هیلر هیدار هیدار هیولا هیدار هیدار चल रखा चैना चल भैंक मंदा चैना भैया